به پادکست رادیو صدای دوست گوش میکنی دوست جوان برنامه مخصوص نوجوانان از رادیو صدای دوست سلام من آپشیت هستم و من سامیا را در شماره 8 از برنامه دوست جوان به استقبال نوروز میشم. در برنامه این هفته میشویم که چهارشنبه سوری در تورنتو چجوری گذشت و چه حال و هوایی داشت و nu sen kan det چهار شنبه شروع کنیم. سامیر شبه چهار شنبه سوری کجا رفتی؟ چی کردی؟ رفتم یه پارکی که پر جمعیت بود و فیش فشه روشن کردیم و از روی آتیش پریدیم. همینطوره. همطور که سامیر گفت احالی تورنتو و اطراف اون در پارک ها و معیدنی که معمولاً از طرف شهرداری برای این کار اختصاص داده میشه. جمع میشن و موزیک گوش میکنن و میزنن و میرخسن و از و های باته باته باته بشبه چی گفته شب تو سخر میاد کوی گفته باشه نفته <موسیقی> کنار اونم که البته آش رشته و کباب و بریونی خوردنم بازارش داغ داغه و همینطور بازارهای نوروزی همه جا برپاست سامیار اسم جریه که ما رفتیم چی بود؟ اسمش بود پارک ریچمون گرین بله علاوه بر پارک ریچمون گرین در ریچمون که مثل اینکه شروختاری مراسم رو داشته در چند جای دیگه هم در تورنتو از جمعه میدان مرلسمن ایرانی ها جمع شدند و چاشن به سرور جشن جشنه آتیش, آتیش آتیش الو الو درای همسایدو سر کوچه فالگوش میشین نواش بیا یواش برو آتیش آتیش الو الو در این همسایدو سر کوچه فالگوش میشین نواش بیا یواش برو خب سمه یا جمعه گفتیم وقتی روی آتیش پریدی چی میگفتی؟ زردی من از تو سرخی تو از من آفرین معنی این جمله رو هم میدونی چی میشه؟ نه خیلی معنیش میشه که کسی که از روی آتش میپره آرزو میکنه که سلامتی و سرخی آتش به اون برسه و بیماری و زردی و هر چی ناخوشی انشالله نصیب آتش بشه. همینطور که سامیار گفت بچه‌هایی که اومده بودن در مراسم چهارشنبه سوری شرکت کنن، فشفشای کوچیک و بزرگشون رو روشن کرده بودن و همراه به در مادرشون از روی آتش میپریدن. و همون شر معروف زردی من از تو سرخیتو تو از کو آتیش رفتار بیو سرخی تو از من زربی من است تو از سوری بیشتر خوشت اومد؟ من آجیل خوردن شایز همه بیشتر دوست داشتم چه چی؟ کباباش هم دوست داشتی؟ کباباش هم خیلی خوب بود آجیل چارشنب سوری هم همونطور که خودتون مزه کردین معمولا آجیل خامه و باسلو و مقنن البته همونطور که سامیار گفت در مراسل میان فیده هر ایچ موندی رو جای دیگه برگزار ب برای اینکه مردم از راهای دور ممکنه اومده باشن و گرست نشون شده باشه لقمه و کباب هم میفروختن <تسخن> <متحد> صده چی میسا آشوق بله درسته همینجور که در حافظه خیلی از ما ممکنه باشه در بچگیامون از مراسم رایج چهارشنبه سوری قشوق زنی بود. قشوق زنی خیلی شبیه همون مراسم تریکو تریت همین شب هالووین اینجاست. من یادم میاد که اون وقتها بچه‌ها روامونو میکوشوندیم معمولا با ملافه و چادر و اینجور چیزا و به در خونه همسایا میرفتیم و با همین صدای قشوق زنی بهشون الام میکنیم ما پشت دریم اونا هم که خیلی لطف داشتن یه مقداری خوراکی میریختن توی زرف و تو کاسهای ما بهمون امون میدادن که بریم بعد ما من خدا خواسته میرفتیم با دوستان ما یه جا میشستیم و همه اونا رو میزدیم به بعد اسم دیگه هم که شاید الان خیلی خیلی کمتر بشه پیداش کرد فالگوشیست دادن شبه چارشمب سوری هستش فالگوشیست دادن هم همینطور که از اسمش برمیاد مردم معمولا یه نیتی میکردن مخصوصا جوانترها نیت میکردن بعد با اون نیتی که توی ذهنشون بود میرفتن در گوششون میذاشتن در دیوار یا در اتاق کسی متذر وای میسادن ببینن که چه میشنون و بنا بنابرای ش برای خودشون تعبیر می‌کردن که آیا نیتشون خوب اومده یا بعد به این حرکت می‌گفتن فالگوشی‌ساری. آتیش آتیش فالگوش می‌شینم و اما از همه مهمتر جشن نوروزه که ما اون رو این سه شنبه جشن نمیدیم سال تحویل شروع میشه سال تحویل هم واقعه که رسما در اثر چرخش زمین به دور خورشید فصلا جابجا میشن یعنی زمستون میره و بهار میاد امسال سال تحویل ساعت 1 و 50 دقیقه صبح سه‌شنبه به وقت تورنتو هستش سامیر بگو ببینم موقع سال تحویل ما چیکار میکنیم معمولا ما ام لباس تمیز نمیپوشیم میپوشیم میشینیم می سرده میز هفتین، شیرینی، آجین میخوریم و اکس میگیریم باره اکس های یادگاری، یادمون نره خب قبل از اینکه ادامه بدی بذار ببینیم این صفره هفتین چه چیزایی سرش هست صنبول، ماهی قرمز، سکه، آینه، سبزه، سن... سماخ سنجه دو سبانو یادت نره <laughs> سنجه، سمنو، سیر، سیب خیلی شد، بیشتر از هفته، آفلین خب معمولاً کدوم قسمتش به محده بچه های خونه هست؟ رنگ کردن تاخمه مرخا و اما لحظه تحویل سالم که بزرگتر از بچه بوس میگیرن و بهشون ایدی میدن من ایدی خیلی دوست دارم چه نوروز باشه چه کریسمس؟ تو ایران بیشتر مردم برای ایدی به بچه ها اسکنس های شده و نو میدن بچه ها هم عیدی جمع میکنن و آخر تعطیلات با ها چیزی که دوست دارن د من خوب یادم میادش که اون وقتا بعد عید که میرفتیم مدرسه همه از همدیگه میپرسیدیم عیدی چقدر جمع کردی و خوشحالیمون از این بودش که هرچی بیشتر تونسته باشیم عیدی جمع کنیم <متصفيق> عزیزم همه با هم بخونی بزایی چه؟ سامیر تو خبر داری روز اول نوروز یا شب عید مردم معمولاً چی میخورن؟ معمولاً سبزی پلو ماهی میکنیم یا آش رشته و آجیل آجیل یادت نره معلومه خیلی آجیل دوست ها <تح Forest> <ents classroom> بعد عیدم تا چند روز مراسم دید و بازیت شروع میشه دید و بازیت میدونه چیه؟ سامیر؟ بکنن وقتی که ما مینین با فامیلامون میبینیم آفرین وقتی که کوچکترای خانواده به دیدن بزرگترا مثل پدربزرگ و مادربزرگ و دایی خاله میرن و عیدو به اونا تبریک میگن اونام در مقابل به بازدید کوچکترا میان و این مراسم تا چند روز ادامه داره تا هم فرصت باشه که اعضای فامیل همدیگه رو ببینن و هم اینکه از حال هم با خبر بشن منم دوست دارم وقتی که با بچهای همسنم هم بازی میکنیم حتما همینطوره یه چیز دیگه هم که بچه‌ها ممکنه خیلی دوست داشته باشن شیرینی و عجل عید که در دید و بازدیدها میزبان‌ها به مهمونا تارف می‌کنن یادتون باشه که خیلی در خوردن شیرینی عجل زیاده روی نکنین چون که ممکنه مم... ممکنه دل درد بگیرید همینطوره دقیقا قبل از اینکه بریم سراغ آخرین مراسم نوروز یادمون نره که حتی قبل از چهارشنبه سوری هم نوروز با خونه تکونی شروع میشه خونه تکونی میدونید چیه وقتی که خونتون رو تکون میدیم؟ نه عزیزم یعنی این که از دو سه هفته مونده به عید شروع میکنیم به تمیز کردن خونه چیزایی رو که نمیخواییم میریزیم دور وسائل زمستونیمون هم مثل همین پالتو و کلا و دستکش رو اینا رو هم بایگانی میکنیم و سال بعد البته این شبیه همون کاریه که اینجا مردم بهش میگن سپرین کلیننگ درسته اما برگردیم سر مراسم پایانی روز که سیزده بدره و مردم در سیزده همین روز نوروز از شهر بیرون میرن و به دامن طبیعت پناه میبرن منجرشون همون پیکنیک کردنه؟ کاملا درسته درباره باره سیزده بدر در برنامه که دو هفته دیگه داریم بیشتر صحبت میکنم خب ما برای برنامه نوروزی یک مسابقه هم ترتیب دادیم برنده ام قرار جایزه بگیر جایزه‌م مونم هست یه تیشرت شرت رادیو دوست به به سوال مون سوالمون هست دوتا ام کشوری دیگه غیر از ایران بگیم که فارسی صحبت میکنن و نوروز جشن میگیرن. پس دو تا کشوری نام ببریم که در اون مردم فارسی صحبت میکنن و نوروز تو اون جشن گرفته میشه. بله. البته منظور ما اینه که زبان اکثریت یا بیشتر مردم فارسی باشه چون در تورنتو هم خیلی خوب فارسی صحبت میکنن. ولی زبان اکثریت یا مردم در کانادا فارسی نیست. نه. منم راهنمایی نمایی میکنم که این کشور ها نزدیک ایران هستن بله جواب هاتون رو یا از صفحه فیسبوک ما برامون بفرستین یا ایمیل بزنید به contact at radiodoos.com و بهتر از همه این که تلفن کنین به شماره 647 947 6836 و با صدای خودتون جواب رو بکنید قابل از اینکه برنامه این هفته رو تمام کنیم سامیار میخواد راجع به ایدی خودش با شما صحبت کنه. یه عکسی که من با یه تکنیک عکاسی گرفتم که شما می‌تونید روی وبسایت رادیو دوست ببینید. هفته بعدم ویدو رد بده بگم چطوری این عکسو گرفتم. نوروز به همه مبارک. منم هم نوروز اومدن بهار رو به همه تبریک میگم. یه بار دیگه شماره تلفنمون رو برای کسی که می‌خوان جواب مسابقه رو بگن یادآوری می‌کنم 647 947-68-36 اشقی همین امشب رو داریم چراق سه زرد و, و سه فرد رو نزاریم یه امشب شب اشقی همین امشب رو داریم چراق سه و, و سه فرد و کی میدونه که قدیم تو فردوش چی نوشته که درمون به امروز باسش فرقی نداری که فردو سر روحش زمون پادکست رادیو صدای دوست را میشه برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط استفاده به وبسایت ما راژیو دوست مراجعه کنید